سحیفه معرفت شرح دعای هفدهم سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه سیزدهم اسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلّ الله علی نبینا و آله تیبین الطاهرین المحسومین لاسیما بریت الله فل ارزین در ادامه فرمایشات حضرت در دعای هیبده از صحیفه سجادیه به اینجا رسیدیم که امام علیه السلام می وقتی برای رسیدن به یک مقصد باید راه را بشناسیم و از مسیر حرکت کنیم تو راه نبودن، گمراه راه بودن، بی راه بودن از مشکلاتی است که انسان را از هدف دور می کند. تلاش مفیده و انسان باید اهل تلاش و جدیت و کوشش باشه قرآن کریم سری ما سعا برای انسان جز اونچه که در سایه سعی و تلاش و کوشششه چیزی نخواهد بود اینا همه پذیرفته ولی تلاش اگر در مسیر نباشد در راستای هدف نباشه نه تنها مفید نیست بلکه مذر خواهد بود اگر بنده میخواهم به مقصد X برم پیاده میروم میدوم رانندگی میکنم ولی این حرکت من در جهتی درست خلاف مقصد X خب این راه که تو میروی به ترکستان است ترسم نرسی به کهبه ای اعرابی گرچه تلاش دارم بیکار نیستم یه زمان ساکنم در جا میزنم هر آقلی به من میرسد میگوید برای رسیدن به مقصد نیازمند حرکت و تلاشی چرا سکون و در جایی رو اختیار کرده ای؟ اما فرض دوم که مورد بحث بنده است من حرکت می کنم، تلاش دارم ولی تلاشم در راستای هدف نیست. اگر در جا میزنم در یه محل معینی است ولی اگر تلاش من فی داشته باشم، نه تنها به هدف نمیرسم از هدف دور میشوم بلکه ضرر دیگری رو هم برای من ایجاد میکند لذا این نکته رو امام علیه السلام به ما توجه دادن که همیشه خدا و عوامل الهی مثل انبیا و اولیا و انسان های صالح عامل هدایت میشوند که راه را به شما نشون بدن مقصد رو ببینید و گمراه نشید اما شیطان و عوامل شیطانی به زلالت مشغولن شما رو از راه بدر کنن این نکته مهم بود کسانی که گوش به حرف شیطان می زمینه رو برای بهرهمندی از زلالت خودشون فراهم میکنن کنن از زلالت میشن. ولی ما در این دعا به بیان امام علیه السلام باید این حالت رو در خودمون ایجاد کنیم و امتعنا منال خدا به مثل زلالته خدایا به ما این توفیق رو بده ما بهره بشیم از هدایت همون گونه که اونا بهره میشن از زلالت اونا راه خودشونو برن ولی ما میخوایم هدایت رو بپذیریم نکته ای که در ادامه این دعا امام علیه السلام میفرماین و زودنا من التقوا ضد قوایته قوایع عدم رشد و ضد رشد همونطوری که ارشاد یعنی راهنمایی رشد ایجاد میکند تعالی ایجاد میکند قوای سقوط ایجاد میکند من در مثل مناقشه نیست فرض کنید بنده میخوام کوهنوردی بکنم کسی که وارد است منو هدایت میکنه میگه اینجوری از این طریق برو بالا باعث رشد من میشه باعث بالا رفتن من میشه اما کسی که میخواد منو گمراه کنه از راه به در کنه میاد میگه از این طرف برو این راهی که او منو نشون میده منو پایین میاره یه وقت میبینم دوستان رفتن من از رحم موندم و باز موندم خب قوایه کار شیطانه میخواد ما رو ساقط کنه همونطوری که خودش سقوط کرد و لذا برای اینکه ما هم مثل او ساقط بشیم این قوایه رو این فریب دادن رو و این از راه بدر کردن رو همونطوری که در فراز قبلی امام سجاد فرمود زلالت اینجا قوایه فرمود این قوایه همونی است که سر راه هدایت ما سبز میشه نمیذاره اما امام علیه السلام چی فرمودن ضد قوایت در مقابل قوایت شیطان شیطان داره کار خودش رو انجام میده یعنی ما رو از راه به کنه که بشیم ما چه کنیم خدای از تو میخواییم نام نامنت تقوا زاد تقویی در ما ایجاد کن و زیاد کن زاد و توشه زاد و راحله در هر سفری نقش مهمی رو برای تداوم حرکت در این سفر این نقش رو خواهد داشت من در حرکت فیزیکی، مکانی و طبیعی ارز کنم اگر از این نقطه آغاز به حرکت کردم و میخوام بیه نقطه دیگری برسم باید حرکت کنم حرکت من زمانی تدابو میابه که زاد و راهله داشته باشم گرسنه شدم، قضامو بخورم تشنه شدم آبی بنوشم تجدید قبا کنم در اثر تجدید و به حرکت هم ادامه بدم چون حرکت محرک میخواد محرک باید توان لازم حرکت رو داشته باشه حرکت به سوی حضرت حق حرکت معنوی است زاد و راهله معنوی میخواد خود قرآن کریم در این رابطه فرمودن اِنَّ خیر از اَتْتَقْوَا بهترین زاد و توشهی که شما میتونید داشته باشید تقویست امیر علیه السلام در نحج البلاغه آمده است در سفر جنگ سفین که باز میگشتن به قبرستانی رسیدند مدتی مدید در مقابل قبرها استادن با این قبرها سخن میگفتند بعد برگشتن رو به جمعیت فرمودن من مطالبی برای اینها گفتم و اگر گوش دل شما شنوا بود می شنیدید این ارواح داشتن داد میزدن. میدانید مهمترین خبری که در عالم ماست می به شما بدیم چیه؟ اون خبر این است ان خیر از زاد و بهترین زاد و توش ای که به درد این سفر میخورد تقواز. حالا اجازه بدید این من تحلیل کنم چرا تقوا بهترین زاده؟ وقتی ما میخوایم حرکت کنیم به مقصد برسیم محرک با داشته باشیم این محرک ایجاد حرکت کند ولی آیا تداوم محرک برای حرکت به سمت مقصد به تنهایی کافی است نه به جهت اینکه اگر در دره هولناکی سر راه ما قرار گرفت گودال خطرناکی بود یه دستانداز پیش آمد محرک ایجاد حرکت کند مفیده یا عامل ترمز کننده کنترل کننده نگهدارنده در اینجا لازمه تقوا از کلمه وقایه است نقش کنترل و نگهداری داره اگر من دارم حرکت می کنم در مسیر حرکت من قوای پیش میاد میگه ضد قوایه تقوا قوایه از راه به در کردن باید قدرت ایستادگی داشته باشم یعنی به این نکته بسیار ظریف باید توجه کرد که تقوا تنها جنبه سلبی ندارد جنبه ایجابی هم داره یعنی چی یعنی همون طوری که در یک جا تقوا به من میگه که بی است نرو در یک جا هم باید به من نیرو بده برو وای نسا یعنی اگر شیطان میاد به من میگه نماز نخوان تقواست که در مقابل شیطان میسته میگه نماز بخوان اگر شیطان به من میگه روزه نگیر عوامل شیطانی به من میگن هجاب نداشته باش عمال شیطان به من میگن حالا رشوه خوردی مشروب خوردی معتاد شدی اب نداره این میلی که میخواد منو به این مسیر پیش ببره تقوا میگه نه بیست گوش نده نقطه مقابلش تقوا میگه این کار رو بکن برو جلو اگر این نیرو در من نباشه خب قوایه کار خودشو میکنه مثل اینکه دستانداز اتومبیل الان زایع میکنه جلو حرکت رو میگیره در سقوط میکنه یا مسیر انحرافی حالا محرک هست داره حرکت میده دیدید وقتی قطار رو ریل داره میره جلو اگه ریلشو به گونه قرار بدیم که از این راه اصلی که مخواد بره منحرف بشه تو راه ورعی این موتوری که داری ایجاد نیرو میکنه سر این راهی که کج کردن ریلو تغییر دادن موتور ایجاد حرکت میکنه این داره میره جلو ولی ریل عوض شد مقصد تغییر کرد یه دفعه جایی دیگه سر در میاره اینجا تقوایی میخواد که بگه در این مسیر حرکت نمی کنم. در این مسیر با حرکت خودم و ادامه بدم لذا قران میفرماید گرچه ایمان محرک است شما رو بادار و حرکت میکنه عمل صالح هم ایجاد میکنه در اثر ایمان به عمل صالح میرسیم همونطوری که امیر در نهج البلاغه بل ایمان یستدل و علی صالحات. به وسیله ایمان دلالت میشیم به طرف عمل صالح اما در همین قرآن کریم آمده وَلَا آغِبَتُ وَلِلْمُتَّقِينَ و سرانجام مال متقین است یعنی کسی که این قدرت رو نداشته باشه ممکن بین راهها ها بلغزه این عمل صالح تداوم نیابه عامل خدایی نکرده زایع کردن و خبت عمل پیش بیاد لذا باید این قدرت باشه پس این خیر از زاد از تقوا پس بهترین تقوا میشه و لذا امام سجاد علیه السلام این نکتر رو به ما توجه میدن از خدا بخوایم و زودنا منت تقوی خدا یا کمک کن ما اهل تقوی بشیم این زاد رو در خودمون ایجاد کنیم توشه تقویی با خودمون برداریم چون ما مخواییم راه بریم. ما میخوایم به خدا برسیم ما باید حرکت کنیم ما در جایی نداریم اما این حرکت ایمان میخواد با ایمان به اعمال صالح برسیم ولی این بزنگاه های خطرناک لغزش که شیطان و عوامل شیطانی با قوایشون برای ما پیش میآورند، اینا را از بین ببریم و کنار بزنیم لذا این عبارت از یکی از نویسندگانه غربی به نام بالزاک شنیدنی و خوندنی است وصول به شخصیت عالی انسانی امکان پذیر است در صورتی که در های گوناگون زندگی چون گوسفندانی که از ها عبور کنند و تکههای پشم بدنشون رو جا گذارند شخصیت انسانیمون را جا نگذاریم انایت بکنید حرف زیباست انصافن. وصول به شخصیت عالی انسانی امکان پذیر است در صورتی که چون گوسفندانی که از گورستان ها عبور میکنن از خارستانها ها عبور میکنن تکه های پشم بدنشون رو جا میگذارند ما شخصیت انسانیمون رو نگذاریم وصول به شخصیت عالی میخوایم بریم بالا مثل گوسفندی که تو خارستان رو بور میکنه پر از بیابان خاریه گوسفند از لابلای خارها میخواد رد بشه تکاهای پشم بدنش کنده میشه ما این خارستان ها چون این شخصیت عالی و حرکت معنوی و سیر روحانی به سوی عزت که مطرح میشه خارستان ها رو هم تو اون وادی باید دید گزرگاه پول در مقابل پول که میرسم شخصیتم رو فرو میگذارم گذرگاه مقام در یه خارستانی از مقام که میرسم یه تیکه از شخصیتم میچسبه به این خارا از دست میره گذرگاه شهوت یه مقدار شخصیتم از دست میدم وقتی از خارستان بیرون اومدم مثل گوسفندی که تیکه تیکه پشم بدنش کنده شده منم شخصیتم رو زمین نهادم. لزامی به ما میگوید آیا؟ قدرت ایستادن داری این شخصیت رو بکنه این میشه تقوا این میشه قدرت کنترل خیشتن از کلمه بغایه خود را نگه داشتن کنترل کردن نگه داشتن در مقابل بدیها اجتناب نگه داشتن در مقابل بدیها جهت سرعتگیر در تداوم حرکت مفید این سرعت بخشی جنبه خیشتن رو کنترل کردن برای تداوم این همین در بحث صبر مطرح می شود در روایات ما اومده از صبر و سلاسه صبر سه تاست صبر در طاعت صبر علالمصیبه و صبر فی یه وقت ما مثلا مصیبتی به ما وارد میشه آیا خودونو میبازیم خسته میشیم در میریم یا استقامت نشون میدیم صبر در تاعت الان میخوام روزه بگیرم بعد استقامت نشون بدم این صبر در اطاعت استقامت در من ایجاد کند که اطاعتم تداوم بیابه صبر در معصیت الان یک لذت معصیت داره منو میلغزونه میخواد به طرف خودش ببره آیا استقامت نشون میدم که بگم برو این دام بر مرغ دگرنه که انقاره بلند است آشیانه نیرو پیدا کنم توان داشته باشم که بتوانم این گرایشو از خودم دور کنم این صبر و استقامت و استادگی در اوجش تو کلمه تقوا میاد یعنی قدرت خیشتنداری من به حدی باشد اونجا که میخوام این مسیر رو راحت جلو برم بتازم و برم جلو و موانع منو باز نداره اونجایی که میخوان منو برگردونن توی راه دیگر دست رد به سینه اونها بزنم در این راه برم قرآن کریم حرکت در مسیر مستقیم را که هیچ اعوجاج نداشته باشه اندکی این طرف و اون طرف نره اینو با کلمه هنیف معرفی کرده و حضرت ابراهیم خلیل رحمان رو مسلمان میداند اما مسلمانی که هنیفن حنیف بوده هنیفن مسلما یعنی تسلیم خدا بود تو خط خدایی حرکت میکرد میگفت انه سلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین اما اینو به صورت حنیف میگفت یعنی چی؟ یعنی وقتی تو این خط قرار گرفت یک ذره به این طرف و اون طرف متمایل نشد گاهی انسان از این خط منحرف میشه اما دوباره بر میگرده گاهی از این خط منحرف میشه همین سیر رو ادامه میده دیگه بر نمیگرده قرآن میفرماید حضرت ابراهیم خلیل در این سیر به گوری حرکت می‌کرد که حنیف بود این راه رو میرفت یعنی قوای شیطان در او تاثیر نداره اون که میخواد بگه ب... فرزند رو قربانی نکن گوش نمیده میگه قربانی میکنم اونجا که میگه خود تو, تو آتش نداز، میگه لازم شد میندازم هیچ گوش نمیدم لذا ما احتیاج داریم این حالت رو در خود زیاد کنیم تا قوایه شیطان رو دفع کنیم امام علیه السلام فرمودن و زودنا من و ضد غوایته این غوایه، این لغزش این عدم رشد و از راه بیرون کردن را که شیطان میخواهد برای ما ایجاد کند در مقابل او به ضدیت او ای خدا از تو میخواهیم که این قدرت رو به ما بدید که از بهترین زاد و راحله که همون تقوا باشه در خودمون ایجاد کنیم نتیجهش چی میشه عبارت بعدی وصلک بنا من طقا خلاف سبیلهی من الردا این عبارت کاملا با عبارت قبلی در همین راستاست و چقدر زیبا این مطلب رو برای ما توضیح میده ردی حلاکت نابود شدن و بیچارگی سلوک سیره تغا مستر همین وقات از تقوا و نگهداری اون حالت خیشتنداری و کنترل رو وسلوک بنامند تغا ای خدا سلوک ما را حرکت ما را سیر ما را به راه ببر ما رو اینجوری سیر بده که ما تو مسیر طقا این مستر وقت قرار بگیریم خلاف سبیلی برخلاف راه شیطان پس راه خدایی که خدا میخواد سیر و سلوک رو در او ایجاد کنه چیه؟ این راه تقویست یعنی راهی که انسان قدرت خیشتنداری پیدا کنه این توان لازم رو بیابه اون جایی که باید حرکت کنه حرکت کنه اون جایی که باید بیسته بیسته حالا از خدا میخواد وسلوک بنامنت توقا تو خدایا کمکمون کن ما رو اینجوری حرکت بده به اذن تو به مدد تو به امداد غیبی تو حرکت ما در این راستاه باشه به خلاف خلاف سبیله من الردا به خلاف این من در اینجا من بیانیه میشه سبیل شیطان منردا یعنی راه شیطان که چه نوع حرکتی است حرکتی است که هلاکت توشه نابودی توشه وقتی من مقصد رو شناختم و مسیری که باید منو به سوی این مقصد ببره این مسیر رو انتخاب کردم اما حالا عوامل لغزش میاد منو از این مسیر بیرون میکنه یعنی منو نمیذاره به مقصدم برسم وقتی به مقصد نرسیدم خب هلاک میشم ببینید در مثالهای مادی من الان مزرعه رو دارم شخم میکنم یعنی راه رسیدن به حاصل کشاورزیه خب یه وقت به من یکی میرسه میگه خدا قوت خسته نباشی احسان ادامه بده انشاءالله خداوند بهت برکت بده این داره دلگرمی میده میگه ادامه بده کارتو بکن اما کسی بیاد بگه بیکاری انقدر تو این باغچه با مزرعه داری بیل می‌زنی چرا انقدر عرق می‌ریزی چرا داری خودتو خسته میکنی بیا بابا سایه بشین با هم دیگه چای بخوریم بیا این کنار بشین یعنی منو داره از راه به در این از راه به در شدن حلاکت نسبت به اون مقصد و همراه داره یا نه مقصد چی بود حاصل کشاورزی برداشتن خب من راهش رو عوض کردم راه حاصل برداشتن شخ بود آبیاری بود دانه پاشیدن بود سمپاشی کردن بود به من میگه نکن بیا این ور منم گوش دادم اومدم این طرف خب نتیجه چی شد؟ حلاکت این مقصد من باید حرکت به سوی خدا بکنم لازمه حرکت به سوی خدا اینه که تداوم بدم این تقوا میخواد اما اگر منو از این راه با قوایه شیطان قوایه شیطان بیرون آوردن خب حلاکت یعنی چی؟ یعنی به خدا نمیرسم. و کسی که به این نتیجه و مقصد نرسید، خب تمام عمرش زایع شده است به قول قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ول آسر. اِنَّ الْإِنْسَاءَ نَلْفِي خَوْصَرِ إِلَّا الَّذِينَ و وَأَمْلُو السَّالِحَاتِ. و تواضع و بلحق و تواضع و چند نکته رو ببینید سوگن به آسر. انسان در خسرانه با توجه به معنی خسران یعنی برشکست شدن اصل سرمایه رم از دست دادن سرمایه در اینجا چیست؟ عمر است عمر دارم میدم دارم حرکت میکنم ولی چی به دست میارم؟ در مثل مناقشه نیست میگویم وگرنه قابل مقایسه نیست اگر من امروز صبح رفتم مزرعه تا غروب این یه روزه من رفت شوخ کردم، دانه پاشیدم یا نشستم سایه درخت فقط چای خوردم برگشتم. خب یک روز عمر من رفت، اما حاصلی که بنابود من زمینشو فراهم کنم، فراهم نکردم. پنجاه و شست و هفتاد و هشتاد سال عمر من رفت، ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این پنج روز دریابی به این فکر فرو میره چیکار دارم میکنم تو راستا هستم یا نه؟ پس این میشه خسران؟ چون چیزی گیرم نیومد. الا اللذین آمنو و عمل و سالهات حالا ایمان میاره عمل صالح میکنه تواصه او به الحق دیگران رو به این حقیقت سفارش میکنه و تواصه او به صبر استادگی میکنه در این مسیر که اگر استادگی نکردیم بین راه خارج شدیم خواب به مقصد نمیرسیم لذا وصلو خدای از تو میخوام این سیر رو بده این حرکت و سلوک این چنانی رو برای من ایجاد کن من تاقا از تقوا خلاف از سبیلی هی من هی ردا خلاف راهی که شیطان داره از حلاکت و گمراهی اون راه او حلاکت میاره راهی که منو به مقصد میرسونه تقواست پس از تو میخواهم منو در مسیر تقوا حرکت بدی و کمک کنی که در این مسیر بیستم پس جنبندی این فراز از دعای امام علیه السلام چی شد ما بدانیم شیطان قوایه دارد شیطان زلالت دارد با زلالت و قوایه میخواد ما را از این راه دور کنه و از تعالی و قرب الهی باز بداره تقوا به جنگ شیطان میتونه بره پس بکوشیم اونچه که در ما ایجاد تقوا می کند قدرش را بدانیم و حساسیت نشون بدیم اواملی که تضعیف کننده تقویه است. عواملی که توان تقوایی ما رو در ما میکاهد در ما اون عوامل رو همشناسایی بکنیم اجتناب کنیم وگرنه دعا به معنی تنها بیان لسانی نیست دعا از کلمه دعوه خواستن است یعنی از خدا بخوایم که اینجوری بشیم از تو خواستن و حرکت کردن از خدا عنایت کردن و برکت دادن است خدایا از تو می این توفیق رو در ما ایجاد کنی تا بتوانیم به فتن شیطان و نزغات شیطانی آگاهتر شویم و با تقوا و ایمان و پناه بردن به تو در مقابل این نزغات و زلالتها و قوای شیطان استادگی نشون بدیم الله تا از هدف باز نمانیم و سلام علیکم